نوار با همکاری نشر ققنوس تقدیم میکند. برتری خفیف نوشته جف پولسان ویلگارد ساحلی و میلیونر تنها کسی که سرنوشت شما را به آن تبدیل می کند نیست که خودتان تصمیم به بودنش می گیرید رالف والدو امرسون می خواهم دو نفر از دوستانم با شما صحبت کنم که آنها را از دوران کودکی می شنسم. افرادی از محله قدیمی مان در نیو مکسیکو. این دو نفر با هم بزرگ شدند. با هم به مدرسه رفتند با هم فارغ و تحصیل شدند و همچنین در خوابگاه دانشگاه هم اتاقی بودند. هر دوی آنها افراد با شخصیت و جذابی بودند و من زمانهایی را با هر دو سپری کردم. آنها دوران کودکی مشابهی داشتند و در دوران دبیرستان به شیطنت و شرارت معروف بودند. با این حال تلاش می کردن و جاهطلبی بسیار زیادی داشتند تا در برابر همه ضربه و آسیب های پیش رویشان ایستادگی کنند. اگر همه مهارت‌ها و استعدادهایشان را در نظر بگیرید، می‌بینید که آنها بسیار شبیه به هم بودند. در حقیقت، آنها تقریباً از هر جهتی یکسان و همانند بودند. آنها از هر جهت شبیه هم بودند. البته به جز یک مورد. مسیرهای متفاوتی که انتخاب کردند و جایی که سرانجام به آن رسیدند. دوست اول دانشگاه را نیمه تمام رها کرد و از نیو به ساحل دیتونا در فلوریدا نقل مکان کرد. او در آنجا به یک ولگرد ساحلی تبدیل شد که مدام مشغول بدنسازی بود با دخترهای جوان خوشگذرانی می کرد و موهای بلند فرفریاش را هم بلند کرده بود. مردم به دلیل شباهت ظاهری او به یکی از ورزشکاران کشتی کچ او را جورج دلروبا صدا میکردند. دوست من مانند ماهی بزرگی که در گودالی کوچک باشد بسیار محبوب بود. اما یک ولگرد ساحلی بود و برای تأمین مخارج ماهیانش چمن زمین گلف را کوتاه می کرد، کیف وسایل گلفبازهای بازهای را حمل می کرد و در زیر آفتاب سوزان مشقت می کشید. سرانجام، ناامید و ناکام ساحل دیتونا را ترک کرد و به نیومکزیکو بازگشت. جایی که کسب و کار خودش را راه انداخت و چه اتفاقی رخ داد؟ کسب و کارش شکست خورد و جورج دلروبا همه چیزش را از دست داد. اما دوست دیگرم که یار و همراه جرج دلروبا بود در بزرگسالی به زندگی پر زرق و برق و شادی دست پیدا کرد. بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه با نمره‌های عالی به آموزشگاه عالی کسب و کار رفت و با بالاترین رتبه کلاس فارغ التحصیل شد. سپس، در یک شرکت بزرگ فعال در زمینه تکنولوژی استخدام شد، سابقهای درخشانی به دست آورد و شروع به برخی فعالیتها و سرمایه‌گذاری‌های های پر ریسک کارافرینی کرد، یکی از یکی موفقتر. امروز زندگیش از هر نظر پربار و غنی است. او یک دختر زیبا و شگفتانگیز و هزاران دوست در سراسر جهان دارد، مالک یک شرکت بسیار موفق است و بیش از حد تصور شاد و خوشبخت است. با این حال هنوز هم با دوست دوران کودکیش همان ولگرد ساحلی در تماس است. در حقیقت آنها ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. اغلب اوقات به این دو نفر فکر می کنم زیرا می دانم که می توانستم جای هر یک از آنها باشم. در واقع بودم زیرا بخشی از این داستان را جا انداختم. دلیل این که آن دو در تمام آن سالها هم اتاقی بودند و دلیل این که امروز هنوز هم با یکدیگر در تماسند، این است که آنها یک نفرند هر دوی آنها من هستم آن شخصی که از دانشگاه انصراف داد به یک ولگرد ساحلی تبدیل شد و سرانجام کسب و کار خودش را شروع کرد اما در آن نیز شکست خورد در واقع من بودم آن شخص فارغ و تحصیل با نمره‌های عالی که یکی پس از دیگری کسب و کارهای موفق ایجاد کرد، به یک میلیونر با خانواده‌ای شگفت‌انگیز تبدیل شد، دوستانی در سراسر جهان به دست آورد و به یک زندگی غنی و سرشار از شادی رسید. آن هم من هستم. در زندگی موفقیت بسیار زیادی به من اعطا شده است، اما مطمئنا زندگیم را در این مسیر شروع نکردم. من کارم را با جرج دلروبا شروع کردم که یک دانشوی انصرافی بود و کارش کوتاه کردن چمنهای زمین گلف در اینجا رازی را با شما در میان میگذارم. امروز من همان فردی هستم که آن موقع بودم البته نه اینکه که تجربه های بسیار زیادم تغییری در من ایجاد کرده باشند همه ما تغییر می کنیم منظورم این است که در اعماق وجودم واقعا با گذشته فرق چندانی نکردم اینطور نبود که یک تغییر و تحول یک شبه و برقاسا داشته باشم. من به قله کوهی نرفتم، تجربه روشنگری و نیز تجربه نزدیک به مرگ نداشتم. اگرچه برخی شکستهای بسیار دردناک و وحشتناک را پشت سر گذاشتم که در آن زمان احساسی نزدیک به مرگ را تجربه کردم. من کسی که بودم را به اندازه آن چه انجام می دادم، تغییر ندادم. من کسی که بودم را تغییر ندادم، زیرا برخلاف نظر دیگران من باور ندارم که کسی واقعا بتواند خودش را تغییر دهد. منظورم این است که ما همانی هستیم که هستیم. کودکی که به یک ولگرد ساحلی تبدیل شد، هرگز چیزی جز یک شخص معمولی و متوسط نبود. متوسط در انجام دادن تکالیف مدرسه، متوسط در ورزش و متوسط در مهارتهای اجتماعی. شخص فوقلاد خوشبخت و کاملا شادی که امروز هستم نیز همان کودک متوسط است، نکمتر و نه بیشتر. من این را بدون ذری شکست نفسی یا فروتنی کازب می گویم. تنها دلیلی که باعث تغییر و تحول من از آن وضعیت به این موقعیت شده است این بود که در جایی از مسیر این شانس را داشتم که در معرض برتری خفیف قرار گیرم این که من چگونه از آنجا به اینجا رسیدم و این که شما چگونه میتوانید از هر جایی که همکنون هستید به آن جایی برسید که میخواهید باشید، موضوع این کتاب است. روز انزجار دگردیسی من از ولگرد ساحلی به میلیونر یک شبه اتفاق نیفتاد، بلکه یک فرایند آرام، طولانی و گهگاه پرپیچ و خم و دردناک بود، چرا که صادقانه بگویم، نمیدانستم چه می کنم. هنوز شاه کلیدی را که شما از خواندن این کتاب به دست میآورید در اختیار نداشتم. من چیزی در برتری خفیف نمیدانستم. با سعی و خطا به آن رسیدم، آن هم با خطاهای بسیار زیاد. من در آلب متولد شدم. در دوران کودکیم پدرم فوت کرد و مادرم به اوضاع زندگی ما سر و سامان داد. و مادری فوقالعاده بود که حضوری مداوم و توأم با عشق در زندگی ما داشت. با این حال، بدون وجود پدر، مسیر سختی در پیش رو داشتم. اصلاً نمیدانستم که با این همه مشکلات چگونه سر کنم و بنابر این، انرژیم را به سوی شرارت و رفتارهای بد هدایت کردم. چند سال قبل از فوت پدرم و زمانی که در کلاس سوم درس می‌خواندم، معلم‌ها به مادرم گفته بودند که من بهره هوشی پایینی دارم. خودم شروع به اثبات آن کرده بودم و خیلی زود به شیطنت و شرارت معروف شدم. در حالی که مادرم تلاش می کرد که روزها را به روش خودش سپری کند، من هم در مدرسه به روش خودم تلاش می در هجده سالگی، برای همه کسانی که من را می شناختند، آشکار بود که آینده چندان روشنی ندارم. با هزار زحمت توانستم در دانشگاه نیومکسیکو قبول شوم. در دانشگاه همان رویه قبلی را در پیش گرفتم و موفق شدم که معدلم را از سی به دی برسانم. هرچند در دانشگاه یک چیز را خوب یاد گرفتم. متوجه شدم زمانی که تعطیلات بهاری فرام می رسد تمام بچه ها به مدت یک هفته به تعطیلاتی مفصل و عالی در ساحل دیتونا می روند. با خودم گفتم که میتوانم این کار را بهتر از آنها انجام دهم. بنابراین کلن از دانشگاه انصراف دادم و به آنجا نقل مکان کردم. من شغل اولم را در ساحل دیتونا و با عنوان یک ولگرد ساحلی با موهای مجعد و بلند شروع کردم. برای اینکه بتوانم مخارج ماهیانم را تأمین کنم در باشگاه گلف اورلاندو مشغول چمنزنی شدم که البته درآمد چندانی هم نداشت. یک روز همانطور که در زیر آفتاب سوزان فلوریدا مشغول کوتاه کردن چمنها بودم، لحظه‌ای مکس کردم و به اعضای ثروتمند باشگاه نگاه کردم که بر روی چمنهای نرمی که من کوتاه کرده بودم، مشغول بازی بودند. تماشای آنها که با لباسهای شیک و کیفهای مملو از چوبهای گلف گران قیمت، شاد و سرخوش با ماشینهای گلفشان این طرف و آن طرف می‌رفتند، این سؤال مهم و سوزان را در اعماغ وجودم به وجود آورد. چرا آنها آن طرف سوار ماشین های گولفشان هستند؟ ولی من اینجا مشغول کارم. جوابی برای آن نداشتم. چطور است که آنها مشغول بازی هستند در حالی که من چمنها را کوتاه می کنم؟ من هم به خوبی آن افراد بودم چرا آنها به جایی رسیده بودند که ده یا بیست برابر موقعیت بهتری نسبت به من داشتند؟ آیا آنها بیست برابر بهتر از من بودند؟ آیا آنها بیست برابر باهوشتر از من بودند یا بیست برابر سختتر از من تلاش کرده بودند؟ فکر نمی اینطور باشد احساس می کردم اتفاقی در جریان است که بایستی از آن سر در می آوردم. موضوعی که باید بسیار روشن و آشکار باشد اما برای من ابدا آشکار نبود همه اینها بسیار نعادلانه به نظر می رسیدند به هر دلیل همانطور که در زندگی خیلی از افراد رخ میدهد خودم را در مقابل یک دوراهی دیدم. نقطه ای که حالا از آن به عنوان روز انزجارم یاد می کنم. همان لحظه هایی که گاهی اوقات در زندگیمان به آن می رسیم. همان زمانی که با وضعیتمان رو در دررو میشویم و بدون داشتن هیچ گونه سر نخی در مورد چون و چرای آن تصمیم به تغییر میگیریم. در حالی که در گرمای سوزان و بیرحم فلوریدا ایستاده بودم، به این لحظه تصمیم گیری رسیدم. ناگهان، فهمیدم دیگر از آنچه بودم و جایی که بودم خسته شدم. ای در ذهنم زده شد. فهمیدم دیگر نمیتوانم به عقب برگردم. همان جایی که لحظه قبل در آن بودم. فهمیدم برای این که همه چیز متفاوت باشد، مجبورم که کار متفاوتی انجام دهم. من به یک قطعه از پازل دست پیدا کرده بودم. فقط یک قطعه که آن هم برای دستیافتن به موفقیت حقیقی و پایدار کافی نبود اما برای شروع حرکت در مسیر دستیابی به موفقیت کافی به نظر می رسید موفقیت فوقلاده در پی ظهور آن روز انزجار از زمین گلف بیرون آمدم لباسها و وسایلم را داخل دوجدارت شش سیلنج مدل 1964 خودم گذاشتم و آنجا را به مقصد آلبو ترک کردم. تمام داراییهای من به راحتی روی صندلی عقب اتومبیلم جا شد و حتی برای یک مسافر هم جا بود. اتومبیلم چنان بد جوش می آورد که فقط شش روز طول کشید تا به تگزاس برسم. این طولانی ترین سفر زندگیم بود. البته نه فقط به دلیل اتومبیل قراضزم بلکه به دلیل مسافتی که در قلب و روح هم سفر کردم. وقتی به نیومکسیکو رسیدم، تصمیم گرفته بودم که برای همیشه وضعیت معمولی و متوسط را پشت سر بگذارم و سکناگزیدن در دنیای افراد بسیار موفق را شروع کنم. میخواستم که این کار را خیلی سری و با تمام قوا انجام دهم. تصمیم داشتم با هشت سیلندر پیش بروم و هر کاری که برای پیشبرد زندگیم لازم بود انجام دهم. همانطور که گفتم در تمام زندگیم در هر کاری که انجام میدادم بهتر از متوسط نبودم. میدانستم تنها راه من برای اینکه بتوانم برای خودم کسی بشوم سخت گوشی و پشت کار بیشتر بود. اگر میخواستم برای بودن در میان نفرات اصلی تیم شانسی داشته باشم مجبور بودم که در تمرین ها سخت باشم. اگر می‌خواستم در جهان روابط اجتماعی شخصی را تحت تأثیر قرار دهم، بایستی در آن زمینه سخت‌تر تلاش می‌کردم. اگر می‌خواستم نمرات بهتری بگیرم، بایستی با تلاش بیشتری درس می‌خواندم. پس همین کار را کردم. در آن ترم برای اولین بار در همه درس‌ها نمره کامل گرفتم. سپس به آموزشگاه عالی کسب و کار رفتم و با بهترین رتبه کلاس فارغ تحصیل شدم. احتمالا با خودتان میگویید باقی ماجرا نیز مانند حماسه بود البته به هیچ وجه اینطور نبود در آن زمان هنوز نمیدانستم که فقط با تلاش و سخت کوشی بیشتر نمیتوان به موفقیت دست یافت اگر اینطور بود پس هر کسی که به سختی کار و تلاش میکرد میتوانست به موفقیت برسد کافی است به اطرافتان نگاهی بیندازید تا ببینید که موضوع اصلا این گونه نیست جهان پر از افرادی است که تا پای جان و آخرین توانشان کار می کنند و با وجود این هنوز هم شرایط و بگونه ای می شود که شکست می خورند. و من خیلی زود این را فهمیدم. تازه دانشگاه را تمام کرده بودم که در فرودگاه بین المللی مشغول به کار شدم. جایی که تمام تلاشم را به کار بستم و بسیار سخت کوشانه کار کردم. خیلی زود به یکی از جوانترین مدیران فرودگاه‌های بینالمللی در امریکا تبدیل شدم. چنان مدیر مهمی بودم که از طرف قول تکنولوژی دالاس یعنی شرکت تگزاس اینسترومنت دعوت به کار شدم. پنج سال بعدی را در آنجا مشغول بودم و تا سطح مدیریت و در مقام مدیر بخش سیستم‌های هوشمند شرکت پیشرفت کردم. اما من برای کار در شرکت‌های بزرگ امریکایی ساخته نشده بودم. سیاست های اداری بسیار زیادی وجود داشت که من از آنها متنفر و گریزان بودم و احساس می کردم که هنوز جایگاه مناسب خودم را پیدا نکردم. به وضوح روی قلتک موفقیت بودم. صادقانه بگویم، احساس می کردم که می توانم هر چیزی را که به ذهنم خطور می کند انجام دهم. مانند اینکه یک ورد جادویی یاد گرفته باشم یا به یک فرمول سری دست پیدا کرده باشم. بنابراین از آنجا بیرون آمدم و در مسیر کارآفری پاگذاشتم. دوباره به آلبوکریکی بازگشتم و یک شرکت انرژی خورشیدی تأسیس کردم. البته چیزی درباره انرژی خورشیدی نمیدانستم. حتی درست نمیدانستم خورشید از شرق می کند یا از غرب. اما به دلیل حضور نزدیک به 400 شرکت انرژی خورشیدی در این ایالت، نیومکزیکو پایتخت این صنعت نوپا به شمار میرفت. بنابراین آگاهانه یا ناآگاهانه راهکاری هوشمندانه به نظر میرسید. در ابتدا اینطور به نظر میرسید که واقعا تصمیم درست و هوشمندانه گرفتم. در طی دو سال شرکتم یکی از بهترین شرکت ایالت شد و طولی نکشید که به یکی از بزرگترین شرکت انرژی خورشیدی در امریکا تبدیل شدیم هیجان زده بودم یکی از برترین شرکت جهان بودیم چیزی که هنوز نمیدانستم این بود که هیچ چیزی یکسان و ثابت باقی نمیماند، همه چیز در حرکت است و هر چیزی تغییر می کند. این همان چیزی بود که بعدا برایم اتفاق افتاد. قوانین مالیاتی تغییر کرد، صنعت ما ضربهی سختی خورد و پیش از آن که بفهمیم چه اتفاقی افتاده است، شرکتم سقوط کرده بود و من همه چیزم را از دست داده بودم. به نقطه سفر و حتی زیر سفر برگشته بودم و پول بسیار زیادی به بودم حتی بیشتر از چیزی که می توانستم امیدوار باشم دوباره به دست بیاورم نمی توانستم آن وضعیت را باور کنم موفقیت های فوقلاده چشمانم دود شدند و رفتند زندگی مجللم ناپدید شد و من به سرزمین ولگرد ساحلی بازگشتم مردی بدون هیچ چیز آنها حتی اتومبیلم را هم گرفتند. شب ناامیدی شبی که اتومبیلم با یدکش دور میشد دل سرد و با ناباوری در پیاده رو نشستم. سالها قبل در جایگاه یک دانشجوی شکست خورده روز انزجارم را تجربه کرده بودم. حالا اتفاق مشابهی رخ داده بود و من در مقام یک کارآفرین شکست خورده به شب ناامیدی هم رسیده بودم. نمیتوانستم درک کنم چه اتفاقی برایم افتاده است. پس از مدتی زندگی کردن همچون فردی شکست خورده، یک روز به خودم آمدم و به دانشگاه برگشتم. با بدترین نمرات وارد شدم و با بهترین نمرات فارغ و تحصیل شدم. به مدت پنج سال برای یک شرکت معتبر کار کردم و در آنجا به بالاترین مراتب رسیدم در کمتر از پنج سال شرکت خودم را تأسیس کردم و در آنجا نیز به بالاترین درجه ها رسیدم من خودم را از فردی شکست خورده به فردی موفق تبدیل کرده بودم و حالا پس از چهارده سال سفر طولانی رو به سوی ترقی و پیشرفت به نحوی دوباره به قعر برگشته بودم من نسبت به زمانی که جورج دلروبا با شلوارهای جین پارهش در ساحل جولان می‌داد، داد و شکسته تر شده بودم. چهارده سال تلاش و تحمل سختی ها برای هیچ؟ نمی درک کنم. نمی توانستم از ادالت یا حتی منطق پشت آن را ببینم. بار دیگر احساسی همانند آن نوجوان داشتم. گیج، سرگشته و خشمگین از جهانی که با عقل جور در نمی‌آمد. آیا زندگی ذاتاً غیر منصفانه و ناعادلانه بود بدون هیچ دلیل یا منطقی؟ آیا حتی با تلاش کردن هم هیچ امکانی برای موفقیت وجود نداشت؟ در همین زمان بود که من با دقت بیشتری بررسی اتفاقات رخ داده در زندگیم را شروع کردم. این بار خبری از آن ظهور و تجلی ناگهانی نبود. این بار مانند آن لحظه خاص در زمین گلف اورلاندو نبود. هیچ کلیدی نبود که بتوانم با فشردن آن اوضاع را بهتر کنم و هیچ گونه تصمیم ناگهانی نگرفتم. قبلا این کار را انجام داده بودم و میبینید که من را به کجا رسانده بود. نه. این بار لازم بود یک جا بنشینم و قطعه های به هم ریخته زندگی در هم شکستهام را با دقت قاعدمند و اصولی بررسی و مرتب کنم. باید منطقی در اینجا نهفته باشد و من بایستی آن را پیدا می کردم. بیایید دوباره بررسی کنیم من یک دانشجوی انصرافی یک ولگرد ساحلی و یک شکست خورده کامل از لحاظ مالی بودم همچنین دانشجویی با نمرات عالی جزء مدیران برتر کارآفرین بسیار موفقی در یک صنعت پیشرو و نوآور و فردی کاملا موفق از لحاظ مالی بودم همه اینها در واقع یک شخص یکسان بودند. پس تفاوت در چه چیزی بود؟ اصلا منطقی نبود. یا شاید منطقی بود؟ هرچه بیشتر این موضوع را بررسی می کردم، مشخص تر که این چرخه نوسانی به دلیل بدشانسی یا حاصل پیشامتهای اتفاقی نبود. ممکن نبود اینطور باشد. درباره کاری که من انجام می دادم، چیزی وجود داشت که درست کار نمی کرد. اما از طرف دیگر مشخصاً زمانهایی بود که کارهایی که انجام میدادم کاملا نتیجه میداد. پس تفاوت در چه چیزی بود؟ برای اولین بار متوجه شدم که در تمام دوران کاریم یک توالی از تجربه هایی را پشت سر گذاشته بودم که رازهایی از موفقیت و شکست در خودشان داشتند. من پی بردم که بنیان هر دو شخص ولگرد ساحلی و میلیونر در اقدامات ای بود که هر روز انجام می دادم. فرار از نفرین چرخه نوسانی در آن زمان می دانستم که آدم متوسطی هستم. اگر به پذیرش این موضوع ادامه می دادم، هیچ تغییری در زندگیم ایجاد نمی شد. تغییرات زندگیم دقیقاً از زمانی شروع شد که این طرز فکر را کنار گذاشتم که چون آدم متوسطی هستم محکوم به کسب نتایج متوسط هستم. سپس این سوال در ذهنم شکل گرفت که آیا این موضوع درست است یا نه؟ من به مرور اصولی و قاعدهمند زندگیم پرداختم و اعمال و نتایجم را به دقت بررسی کردم. چیزی که متوجه شدم این بود. وقتی که مردم در سراشیبی شکست قرار میگیرند، دست به هر کاری میزنند که موجب بالا رفتن آنها به سمت نقطه بقا میشود. سپس به محض اینکه به نقطه می میرسند که میتوانند سرشان را بالای آب نگه دارند، بار دیگر شروع به پسروی می‌کنند. به محض اینکه تا حدی به خط شکست نزدیک شدند، با خودشان میگویند، اوه، دارم به سمت شکست می‌روم. و بعد هر کاری که لازم باشد انجام میدهند. تا خط سیرشان را تغییر دهند و شروع می کنند به صعود کردن. و این چرخه همینطور تکرار می شود. این همان کاری بود که من انجام می دادم. و همان کاری است که بسیاری از مردم انجام می دهند. آنها همه زندگیشان را اینگونه سپری می کنند. نوسان میان شکست و بقا، تلاش برای رسیدن به موفقیت و گاهی اوقات حتی رسیدن به سطحی از موفقیت. اما پس از آن دوباره به سمت پایین و نقطه شکست می روند. ما این کار را در امور مالی، سلامتی، ارتباطات و در کل زندگی من انجام می دهیم. چرا؟ ممکن است بگویید به این دلیل که ما در کار خودمان کارشکنی می پدرانمان با ما بدرفتاری می کردند. حالا ما نیز با خودمان بدرفتاری می کنیم. ما در کشمکش و تضاد هستیم چرا که جامعه پیامهای ضد و نقیزی برای ما می فرستد. ما به یک الگوی خود تخریبی شده ایم، زیرا بنا به دلایلی احساس می کنیم که استحقاق و شایستگی موفقیت را نداریم. شاید برخی از اینها درباره شما نیز صدق کنند. حتی ممکن است همه آنها درست باشند. نظری در این باره ندارم و صادقانه می گویم که هیچ اهمیتی هم نمیدهم زیرا هیچ کدام از آنها اصلا مهم نیست. حقیقت این است که خواه آن عوامل وجود داشته باشند، خواه نه؟ تنها دلیلی که ما این چرخه نوسانی تقریباً موفقیت و تقریباً شکست و این موج سینوسی و نفرین معمولی بودن و متوسط بودن را ادامه می دهیم، این است که از یک نکته ساده قفلت می کنیم. این ای بود که به آن پی بردم. هنگامی که شروع به بررسی موفقیت ها و شکست هایم کردم، چیزی که متوجه شدم این بود که همان فعالیت هایی که من را از شکست نجات داده و از خط شکست به خط بقا رسانده بودند، می من را از متوسط بودن نجات دهند و از خط بقا به خط موفقیت برسانند. البته اگر فقط انجام دادن آنها را ادامه می دادم. و نکته همین بود، این دقیقا همان کاری بود که من انجام نمی دادم. به محض اینکه به کمی بالاتر از خط بقا می رسیدم و در مسیر موفقیت قرار می‌گرفتم، بدون توجه به آن و حتی بدون فکر کردن درباره آن انجام دادن کارهایی را که من را به آنجا رسانده بودند متوقف می کردم. طبیعتا پس از آن دوباره شروع به پس رفت میکردم، عقب نشینی به سوی بقا و حتی پایین از آن به سمت خط شکست و مدام این کار را انجام میدادم. همیشه فقط به همین دلیل است که زندگی ما آن چرخه نوسانی را دنبال می کند. به همین سادگی است. به محض اینکه از شکست دور می شویم و از خط بقا عبور می کنیم از ادامه دادن کارهایی که ما را به آنجا رسانده دست می کشیم. می دانید این موضوع به چه معنی است؟ به این معنی که شما در حال حاضر از انجام دادن هر کاری که برای رسیدن به یک موفقیت العاده و بسیار بزرگ لازم است آگاه هستید. این گونه است که تا حالا جان سالم به در برده اید و اگر میتوانید در خط بقا باقی بمانید پس میتوانید موفق نیز بشوید نیازی نیست که کارهای خارق العاده و غیر ممکن انجام دهید نیازی ندارید که مهارت بسیار دشوار را یاد بگیرید یا همچون نوابق ایده های نوآورانه بکر و ناگهانی داشته باشید همه کاری که باید انجام دهید ادامه دادن همان کارهایی است که شما را به اینجا رساندند این دقیقا همان کاری است که 99.9 ده دهم درصد از مردم انجام نمی دهند. این که آن کارها چه هستند، چرا بسیاری از مردم آنها را انجام نمی دهند و شما چگونه می توانید با انجام دادن آنها بسیار شاد و موفق زندگی کنید، موضوع همین کتاب است. من پی بردم که در میان آن چرخه نوسانی یک راز موفقیت امیغ نهفته است، اگر فقط انجام دادن همان کارهایی را که ما را در وهله اول از شکست به سوی بقا رساندند ادامه دهیم، کارهایی که در حال حاضر می‌دانیم چگونه انجامشان دهیم و انجام می‌دهیم، در نهایت همان کارها ما را به موفقیت رهنمون می‌سازند. آنها دقیقاً چه کارهایی هستند؟ کدام اقدامات هستند که ما را به بالای می می‌برند و کدام اقدامات هستند که ما را به سوی پایین سوق می‌دهند؟ در دو کلمه به شما میگویم کارهای ساده کارهایی که شما را از شکست دور میکنند و به سوی بقا و موفقیت می میسازند ساده هستند در حقیقت آنقدر ساده اند که به آسانی نادیده گرفته میشوند نادیده گرفتن آنها فوق العاده آسان و راحت است نادیده گرفتن آنها به این دلیل آسان است که وقتی به آنها نگاه می کنید بی اهمیت به نظر میرسند آنها کارهای بزرگ و شاقی نیستند که نیاز به تلاش زیادی داشته باشند. آنها کارهای قهرمانانه یا متحورانه نیستند. بسیاری از آنها فقط کارهای کوچک و ناچیزی هستند که هر روز انجام می دهید و هیچ کس دیگری جز خودتان به آنها توجهی نمی کند. آنها کارهای هستند که به سادگی انجام می شوند. با این حال افراد موفق آنها را انجام می دهند اما افراد ناموفق فقط به آنها می نگرند و کاری نمی کنند. کارهایی مانند پسنداز کردن فقط چند دلار از حقوقتان و خرج نکردن آن یا چند دقیقه ورزش روزانه و از قلم نینداختن آن یا مطالعه روزانه ده صفحه از یک کتاب الهام بخش و متحول کننده زندگی یا اختصاص دادن فقط چند دقیقه برای اظهار قدردانی از شخصی و انجام دادن این کارها به صورت مداوم و هر روزه به مدت چند ماه یا چند سال. کارهای کوچکی که در حین انجام دادنشان ناچیز و بی اهمیت به نظر می رسند، اما وقتی در طول زمان مرکب شوند، نتایج بسیار بزرگی به بار می آورند. می توانید این کارها را فضیلتهای کوچک یا عادتهای های موفقیت بنامید من به آنها اقدامات منظم ساده می گویم. اقدامات سازنده ای که در طول زمان به طور مداوم تکرار میشوند و این به طور خلاصه همان برتری خفیف است. ولگرد ساحلی یا میلیونر. دلیل اینکه من داستان ولگرد ساحلی و میلیونر را برای شما تعریف کردم این است که آن داستان فقط داستان زندگی من نیست، داستان زندگی شما نیز هست. شما در درونتان هم ولگرد ساحلی دارید و هم میلیونر یک شکست بلغوه و یک موفقیت بلغوه همه ای ما این دو را داریم چه چیزی موجب می شود که به نتایج متفاوتی برسیم؟ در حقیقت شما هستید که این تفاوت را ایجاد می کنید حقیقت این است که شما کنترل تمام و کمالی بر مسیر زندگیتان دارید پس از آن شب نامیدی. کسب و کارهای موفق بسیار زیادی را ایجاد کردم و نسبت به زمانی که مدیر شرکت یا کارآفرین عرصه انرژی خوشیدی بودم، پولی بسیار بیشتر از حد تصورم به دست آوردم. همچنین در روابطم با دیگران شادی و رضایتی را به دست آوردم که فراتر از تصورم است. در حال حاضر، سالمتر، پر تر و سرزنده تر از ده سال پیش هستم. امروز من شادمانتر هستم، روابط بهتری دارم و نسبت به ده سال قبل زندگی حرفه‌ای رضایت بخشتری دارم. البته ده سال قبل نیز همه چیز به خوبی پیش می‌رفت. در حقیقت امروز زندگیم در هر زمینه‌ای بهتر از ده سال پیش است و انتظار دارم که ده سال بعد نیز همین حرفها را بگویم. البته ممکن است فردا همه اینها را از دست بدهم. این موضوع قبلا برایم اتفاق افتاده است و من از آن نجات پیدا کردم. چیزی وجود دارد که من آن را از دست نمی دهم و با همان یک چیز می توانم از ابتدا شروع کنم و همه چیز را از نو بسازم و این کار را هم به سرعت انجام می دهم. آن چیز برتری خفیف است. نکته دیگر اینکه وقتی می گویم میلیونر تماما درباره پول یا موفقیت مالی صحبت نمی کنم من این عبارت را به مسابه اصطلاحی برای موفقیت به کار میبرم و فقط یک اصطلاح و استعاره است. درست همانطور که ولگرد ساحلی نیز فقط یک استعاره است. وقتی که میگویم میلیونر منظورم شخصی است با یک لبخند میلیون دلاری با یک میلیون دوست که یک میلیون دلار اصلا میلیاردها و تریلیونها دلار شادی، عشق، رضایتمندی، روابط عالی، شور و اشتیاق، حیجان و موفقیت در زندگیش دارد. من آن نوع زندگی را برای شما میخواهم. داستانهای شخصی از خوانندگان کتاب زمانی که کتاب برتری خفیف برای اولین بار منتشر شد، چند جلد از آن را برای دوستانم فرستادم و فکر نمی کردم که بازخورد خاصی بگیرم. اما آنها با من تماس گرفتند و گفتند چیزهای بسیار خوبی از این کتاب یاد گرفتند. حرفایشان را خیلی جدی نگرفتم چرا که دوستانم بودند. اما سپس همان حرفها را از افراد دیگری نیز شنیدم. افرادی که دوستانم کتابشان را به آنها داده بودند و من اصلا آنها را نمیشناختم. از آنجا بود که همه چیز شروع به اوج گرفتن کرد خیلی زود از صدها نفر شنیدم که اصول ساده این کتاب چگونه بر زندگیشان اثر گذاشته و حتی زندگیشان را متحول کرده است هنگامی که این صدها نفر به هزاران نفر تبدیل شد به ذهنم خطور کرد که به اشتراک گذاشتن برخی از این داستان‌ها با شما ممکن است موضوع را به شیوه دیگری برایتان روشن کند و به شما کمک کند تا آن را در زندگی خودتان به کار ببندید از فصل بعد در پایان هر فصل یک یا دو داستان از خوانندگان کتاب را با شما در میان می‌گذارم که در این باره صحبت می‌کنند که برتری خفیف چگونه بر زندگیشان اثر گذاشته است. نکات مهم. همان اقداماتی که ما را از شکست به سوی بقا سوق می دهند، می توانند ما را از بقا به سوی موفقیت رهنمون سازند. البته اگر فقط انجام دادنشان را ادامه دهیم. شما در حال حاضر از هر کاری که برای رسیدن به یک موفقیت خارق‌العاده و بسیار بزرگ لازم است آگاه هستید. همه کاری که باید انجام دهید، ادامه دادن همان کارهایی است که شما را به اینجا رساندند. شما کنترل تمام و کمالی بر مسیر زندگیتان دارید.